امید عزیزم سلام از شروع کار شاید رفتم با نیسان و اون سختی هایی که تهران کشیدی در ادامه انبارداری توی چار منتظری اول پیلوت خونه و چار منتظری یا انبار میانچال حالا هم انبار نوینن المستری سیناباد همه اینها با زحمت و حمت تو به اینجا رسیده میخوام در سالگرد نهم نوینن ماست با جسم و جانت این رو حس بکنی چه زحمات دیده میشه دیده خواهد شد و اگر امروز پیشرفتی حاصل شده قطعا با زحمت تو با ایده های تو با فکر تو و بیشتر از همه با اراده تو بوده inشاالله که در قرار خانم نجسی در ابتدا در زندگی شخصیتون موفق باشین به هدفاتون برسین و لذت ببرین در قسمت کاری هم انشالله که مدارج بالاتر و پیشرفت های بیشتری رو داشته باشی من و مجموعه نوبین الماس قدوان زحمات بی‌شائبه تو تو این سالها هستیم با امیدوارم که این همکاری سال‌های سال ادامه داشته باشه همون جوری که شروعمون با هم بوده پایان کار کردن نوین الماس مون هم و بازنشستگی هم با همدیگه باشه بارداروزی سلامتی میگم